اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان اللین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی نبینا و آله الطاهرین خدمت شما عرض سلام دارم و صبح بخیر و ان که در صحت و سلامت کامل باشید برای اینکه سرعت کار خودمون رو داشته باشیم میریم سر مطلب خودمون ما در رابطه با فساحت تقسیم کردیم فساحت رو به فساحت در کلمه و شرایط آن رو گفتیم و بعد فساحت در کلام و شرایط آن رو هم بیان کردیم و آخرین شرطی هم که گفتیم گفتیم که کلام نباید دارای تعقید معنوی باشه گفتیم تمام کلماتش باید فسیح باشه شرط اول تنافر کلمات نداشته باشه شرط دوم ضعف در تعلیف نداشته باشه یعنی طبق قواید مشهور نحو باشه شرط سوم تغیید لفظی نداشته باشه شرط چهارم تغیید معنوی نداشته باشه شرط پنجم بعد مطالب رو هم با شکل مثال و غیره برای شما بیان کردیم حالا دو یه تفسره به این موضوع میزنیم و مبحث تمام میشه اونم اینکه بعضی از علماء بلاغت دو شرط دیگه اضافه کردند. گفتن این دوتا هم نداشته باشه یکی کسرت تکرار، کسرت تکرار، دوم تطابق اضافات. یعنی کسرت و تکراره بعد تطابق آل اضافات. کسرت تکرار یعنی یک کلمه در یک کلام تکرار بیشتر از کسرت معمولا از دوتا بیشتر دیگه سه بار چهار بار تکرار شده باشه یک تتاب اضافات هم یعنی یک اسمی به اسم دیگه اضافه شده اون به یک اسم دیگه اضافه شده باشه که در واقع تتاب اضافات از سه به بعد رو داری ما این دوتا رو این دوتا شرط رو نمیپذیریم یعنی این دوتا شرط رو نمیپذیریم چون چون اگر این دوتا شرط ایجاد تنافر بکنه خب بله میره جزء قسمت تنافر و کلام رو سقیل میکنه هم برای شنونده هم برای گوینده و ما با قید تنافر این را آبودیم اما اگر تنافر ایجاد نکنه تنافر ایجاد نکنه هیچ اشکالی نداره چون ما داریم حتی در کلام فسیح مثل قرآن درست شد و مثل کلامهای دیگری که قبل از قرآن در جاهلیت اشعاری که بوده توش تکرار هست و هیچ کسی هم اشکال نگرفته تطابع اضافات هست و اشکال هم نگرفتند. مثلا نهایه قرآن رو ببینید و نفسن قسم به نفس خورده و نفسن و ما سواها فعل فجورها و تقواها ها رو میبینید دیگه تکرار شدید و نفسن و ما سواه ها و تقواها ها میبینیم خیلی از ریتم خوبی برخورداری هیچ کسی هم حتی اونهایی که با زائغه اشکالات رو میفهمیدن این اشکالات رو در زمان نزول و قرآن نیامدند اشکال کنند همونهایی که کوچکترین تنافر حروف رو مثل در کلام امروز قسمی دیدن اشکال میکنند نهیچی نگفتن کلام رو فسیح فسیح دیدن. یا مثلا این آیه ذکر و رحمته رب زکریا. عبده زکریه. سوره مریمه ذکر اضافه شده به رحمت ذکر و رحمته رحمت اضافه شده به رب رب اضافه شده به کاف سوره مریم از صوره است که در اعلا درجه بلاغت و فساحت کلمه و کلامان و حتی زمانی که نازر شد که پیامبر در ضعف هم بودند هنوز دولت اسلامی تشکیل نشده بود هیچ کسی نیامد کوچکترین حرفی رو بزنه ذکر و رحمت رب بکر عبده و پس بنابراین کسرت تکرار و تتابع اضافات اگر در کتبی بیان شده است قابل قبول نیست اگر این دوتا ایجاد تنافر کردن تنافر کلمات خب بله ما با تنافر کلمات اونها رو از فساحت کلام خارج میکنیم اما اگر تنافر کلمات نکردند که شما دارید میبینید کسرت تکرار هست و کلام هم کاملا فسیحه و اشکالی هم ندارد این را بیان کرد خب بعد از فساحت کلام باید وارد فص... چی فساحت کلام باید وارد فساحت در متکلم بشیم فساحت متکلم بشیم خب فساحت متکلم دیگه شرطهای یک و دو و سه و اینها نداره مثلا ما در مورد فساحت کلام اینطور گفتیم دیگه مثلا ان نفساحت الکلامه تکونو به خلوه هی یا خلوصه هی من تنافر کلماته یک و من زعف تعلیفه دو و تعقید لفظهی سه و تعقید معناه چهار درست شد؟ و گفتیم که فساحت کلماتش باید باشه ش میشه پنج این شرایط رو ما گذاشتیم اما در فساحت متکلم یک شرع تعریف بیان میکنیم اینو داشته باشید که دیگه مسئله تمام بشه بنویسید هر متکلمی که هر متکلمی که بتواند هر متکلمی که بتواند با قدرت ملکه با قدرت ملکه ملکاتون هر متکلمی که بتواند با قدرت ملکه کلمه و کلام کلمه و کلام فصیح بگوید متکلم فصیح است متکلم فصیح این تعریفش هر متکلمی که بتونه با قدرت ملکه کلمه و کلام فسیح بگه متکلم فسیح نامیده می شود. این تعریفی دوسته تا قید داره که این دوسته تا قید اگر بگم دیگه کامل میشه. قید اول گفتیم هر متکلمی که بتواند یعنی باید توانایی داشته باشه الان ساکته فرض بفرمایید که یک نفر متکلم فسیح ما داریم که کلمات و کلام فسیح میگه ولی الان ساکته چند روزه چی نبود بازم این اسمش متکلم فسیح یعنی شرطش گفتن نیست شرطش است، اقتدار است. این یک گفتیم بتواند یعنی نیستش که بگو تا بشی متکلم فسیح نه اصلا توانایی شو داره این توانایی شو داره میشه متکلم فسیح دو هم کلمه هم کلام فسیح بگه درست شد و این رو بر اساس قدرت ملکه بگه این قدرت ملکه رو توجه کنید مطلب تمام میشه ببینید ما در رابطه با یادگیری سه مرحله رو داریم یعنی همین الان شما هم دارید بلاغت آموزش میبینید سه مرحله است رانندگی برید یاد بگیرید سه مرحله است نقاشی سه مرحله است. همه چی سه مرحله است یک مرحله اینه که شما جاهلید و اون علم رو یاد میگیرید یا اون فن رو یاد میگیرید اینوش میگن مرحله تعلیم و تعلم یادگیری. این مرحله که شما یاد میگیرید آفت داره آفتش فراموشیه لذا گفتن آفت علم انسیان آفت علم یعنی یادگیری که شما انجام دادی و یاد گرفتی فراموشید فرض کنید شما آمدید سوره حمد رو به یه بچه یاد میدید اون سوره حمد یاد میگیره میخونه میگی بخون میخونه بخون میخون خب یادگرفتید حالا یعنی عالم شد بلده خب این الان اگر یک هفته نخواند دو هفته نخواند فراموش می شود. داره حالا به اینکه چقدر استعداد انسانی قوی و ضعیف باشه، نیروزود یا گیرش دوچار فراموشی میشه. این مرحله علم. بعد از مرحله علم، کنید مثلا شما رفتید رانندگی، حالا اون یادگیری علمی بود، تئوری هم بود، بچه بود شما جرفیاب رانندگی رانندگی رانندگی تمرین تمرین یاد گرفتی بد نشستی پیش اون افسر راهنمایی و به تو گواهی نامه داد یعنی شما الان رانندگی بلدی ولی گواهی نامه گرفتی گوش کن ماه یک سال پیش نشستی پشت ماشین کم یا زیاد حالا بستگی باز به استعداد داره این علم که تو یاد گرفتی دوچار فراموشی میشه آفت میبینی این مرحل علم، تعلومه یادگیریه نزا مثلا شب امتحان خوب افز کردی اومدی امتحان رو دادی بعدش هم فراموش میشه خب این آخرش هم که انسان لیسانس بگیره میبینی تو دوره لیسانس همه نمرات بیست بوده میاد مثلا برا کنکور یا مثلا دو سال بعد تو کنکور شرکت میکنیم میره خب نمیشه چرا شما آفت میبینه دیگه مرحله بعد از این مرحله مرحله حال بهش میگن حال با لام دو چشم یا مهارت خبرگیه مهارت این مثل این ممانه شمایی به یه بچه یاد میدی سوره همدون اون سوره همدو یاد میگیره مثلا میره مدرسه سر سب یا توی کلاس نه ماه سال سوره همدو میخونن با فاصله ها خب این الان دیگه قشنگ یاد گرفت بلده ولی میاد سه ماه بعد کتابستان هست و غیره نمیخونه بعد نمیده یه ذره باز گیر بده این مرحله حال باز آفت داره آفتش نسیانه اما کم تره مرحله مهارته مثل کسی که مثلا رانندگی کرده بعد از گواهی نامش ماه ماشین دستش بوده تا و تو این بر میرفته حال مدت مثلا دو ست ساله که روانندگی نه این باز دستش کن. حال هم این آفت رو داره اما کمتره مرحله مهارته اما بعد از این مرحله دیگه مرحله ای می میرسه که بهش میگن ملکه دیگه اصلا این قابل فراموشی نیست مگر اینکه طرف آلزایمر بگیره یا ذهنش به قول خودمون مشکل پیدا کنه آفت در سخت افزارش بیفته و الا اشکال پیدا نخواهد کرد این مرحله ملک مثل مثلا کسی که رانندگی رو ببای با گرفته بعد سی سال هم راننده تاکسی بوده این آدم دیگه اصلا استعداد ملکه رانندگی اگه مثلا خدای نکرد تصادف کرده چار سال پنج سال ده سالم زندان بوده حالا آمده بیرون سویچه قشمیدی سوار میشه مثل روز اول می. اون کسی که داره رو تناب راه میرم هم همین مرحله رو کرده اولش حتی از دیوار پهنم میترسیده را بعد یاد گرفته چجوری؟ بعد اینقدر تمرین کرده تا حال شده بعد ملکه پیدا کرد مثل کسی که سوره همد رو مثل من مثلا الان تو این سن از کودکی سوره همد یاد گرفته بعد خانده بعد نماز خونده الان نگاه میکنی دیدید دیگه نماز میخونم مثلا فکرم نیست ترین سوره همد رو کسی که نشسته میگه چه با استعداد میخونم این ملک است حالا کسی که کلمه و کلام فسیح رو تمرین میکنه آموزش میبینه بعد به مرحله حال میرسه خوب سخنرانی میکنه خوب میفهمونه خوب بیان میکنه بعد به قول خودمون انقدر استعداد بالاست به ملکه و قدرتی در او تبدیل میشه این آدم از خواب بیدار میشه فصیح صحبت میکنه. در غم فصیح صحبت میکنه در شادی فصیح صحبت میکنه این دارای استعداد ملک است پس این اگر یک نفری آمد مثلا کل نیوان حافظ رو یا گلستان و بوستان سعدی رو از حفظ خوند ما به این نمیدیم این آدم متکلم فصیحه چرا تو بر اساس استعداد نمیتونه بلکه حافظ و سعدی فسیح بودن پس بنابراین این این شد هر متکلمی که بتواند با قدرت ملکه کلمه و کلام فسیح بگوید این میشه متکلم فسیح پس شرط فساحت کلمه رو گفتیم فساحت متکلم رو گفتیم فساحت کلام رو هم بگیان اول فساحت کلمه رو گفتیم بعد فساحت کلام رو گفتیم چون فساحت کلمه در شرط بود بعد فساحت متکلمه رو گفتیم چون فساحت کلمه و کلام در شرط بود گفتیم هر متکلمی که بتواند کلمه و کلام فسیح با قدرت ملکه بگوید فساحت پروندش تنم وارد بحث بلاغت میشه بلاغت مستر است بلاغه یعنی رسید بلاغ یبلغو بلاغتن یعنی رسید بلاغ لعلا به کماده خوب این معنی لغویشه اما معنای اصطلاحی بلاغت چیست؟ باز بلاغت لفظ مشترکه. لفظ مشترکه یعنی ما نمیتونیم تعریفش کنیم مگر اینکه اول تقسیم کنیم سپس تعریف کنیم. خب اگر بخوایم تقسیم کنیم بلاغت به چند دسته تقسیم میشه؟ بلاغت به دو دسته تقسیم میشه، دیگه سه دسته نیست. یک بلاغت کلام بلاغت در کلام یعنی کلام بلیغ دو بلاغت در متکلم یعنی متکلم بلیغ دیگه کلمه بلیغه نداریم دیگه کلمه بلیغه نداریم پس بلاغت بلاغت شون لفظ مشترکه مثل فساحت اول باید تقسیم کنیم بعد دوباره هر قسم رو تعریف کنیم بلاقت برخلاف فساحت به دو قسم تقسیم میشه یکی بلاغت در کلام یعنی کلامون بلیغون دو بلاغت در متکلم یعنی متکلم بلیغون بنابراین برخلاف فساحت اینجا ما کلمه بلیغه نداریم حالا تعریف که بکنیم متوجه میشید چرا نداریم کلمه پس اگر یه جایی توی مثلا نوشتاری دیدید نوشته حاضیهی کلمتون بلیغتون اگر اون یک کلمه بوده خب منظورشون از بلیغه فسیح هست اگر نه حاضهی کلمتون کلمه سخن بوده مثل کلمت و حق نیراد و به حلباته از کلمه که گفته یعنی سخن ها خب منظور کلامه و الا ما در اصطلاح کلمه بلیغه نداریم خب پس نو قسم بلاقت در کلام بلاقت در متکلم یک اول کدوم رو میگین؟ بلاغت در کلام چون بلاغت کلام در بلاغت متکلم شرط دیگه اول با دیلیم. فارسی میگم بنویسید هر کلام صحیح و فصیح. هر کلام صحیح و فصیح. که مطابق با مقتضای حال مخاتب باشد کلام بلیغ است هر کلام صحیح و فسیحی که مطابق با مقتضای حال مخاطب باشد کلام بلیغ است ببینید اولا منظور از صحیح و فسیح اینجا یکیه حالا من گفتم صحیح و فسیح میتونه صحیحش نباشه یعنی عطفش عطف تفسیریه چون اونی که صحیحه فسیحه اونی که فسیحه صحیحه درست هر کلام فسیحی که مطابق با مقتضای حال مخاطب باشد کلام بلیغ است خوب گوش کنید خب الان شما هر کلامی که صحیح و فسیح باشد و بلدید چون خوندیم دیگه کلماتش چه شرایطی باید داشته باشه کلامش بگید چه شرایطی باید داشته باشه هر کلام فسیحی که مطابق مقتضای حال ببینید آیا فقط یک کلام صحیح و فسیح باشه؟ میشه بلیق میشه شیوا میشه خوب؟ نه؟ چرا؟ چون ممکنه یه کلامی صحیح و فسیح باشه؟ اما مطابق مختزای حال مخاطب نباشه این نیست مثل اینکه منو دعوت کردن به یک جایی عروسی است؟ حالا گفتن که مثلا شما که این زوجین رو میشناسی؟ چند دقیقه صحبت کنم من برم صحبت کنم اما موقعی که میخوام صحبت کنم شروع کنم از آیاتی بخوانم که عذاب قبر پل سراد سرنوشت اهل جهنم در جهنم و شدت جان دادن انسان ها به هنگام مرگ این آیات روایه دارم و چی میگن؟ یا بیاد پایین بیاد پایین این کلام صحیح و فسیح نیست؟ بله چی بود که گفتن بگید بیاد پایین بابا چون مطابق مختزایه بگید حال نبود. همینطور اگر مثلا در ختم دعوتم کنن برم اونجا آیاتی رو بخوانم که در اون آیات به قول خودمون شادی و شادمانی و یا اعادیسی رو بخوانم که به نوعی لطیفه باشد همین مطابق مقتضای حال مخاطبات پس کلام بلیغ دو تا درصده یه پنجاه درصدش از ذات کلام خوب باشه صحیح و فصیح یه پنجاه درصد دیگش اینه که مطابق مقتضای حال مخاطب باشه. مطابق و حال مخاطبش. لذا اون شعر رو دیدید میگه خوب گویو، گزیده گوی چون دور. یعنی همه خوب گوی یعنی سعی و فصیح باشه. گزیده گوی یعنی گزیده باشه برای کی داری میگی؟ خوب گویو گزیده گوی چون دور. میشه چون دور میشه کلام برد. چون ببینید اصلا یه پزشک خوب حالا من یه مثال میزنم برای خاطی اینکه شکل دارم میره هی بتونه جا بیفته مطلبم. یه پزشک خوب چه خصوصیتی داره دوتا خصوصیت یک تمام ها رو میشنسه خواست داروها رو میدونی داروها رو از غیر داروها و خواست هر کدوم رو میدونی این میشه همون کلام سعی و فسیش. اما همین مقدار کافیه برای خاطر اینکه پزش پزش رو خوبی نه ممکنه داروی رو به داروی. کی میتونه پزش که حاضق و خوبی باشه که بیمار رو هم خوب بشناسه داروی مناسب رو به مرز مناسب تشریز کنه این میشه پزش که میشه پزش خوب بیمارو بشناسه مختصای حال اونو بدونه اما دارو رو نشناسه نمیشه دارو رو بشناسه بیمارشناسی نداشته باشه نمیشه اما هر قدر بهتر بتواند داروها رو بشناسه و هر بهتر بتواند تشخیص کنه پزشک برای همین هم از که شما یه پزشک میرید با یه نسخه خوب میشید یه پژوهش دیگه ممکنه سه تا بده تا خوب شید. اون یه دونه اولی چرا؟ چون هم داروها رو بهتر میشناخته هم شما رو بهتر مریضیتونو شناخته برای همینم است هم که بلاغت مراتب داره مراتب داره شما یه منبری رو نگاه میکنید ببینید مثلا فرض کنید بهش میدن صد هزار تومن یکی دیگر میدن یه میلیون تومن یکی رو میدن ده میلیون چرا؟ به دلیل اینکه مراتب کلام صحیح و فسیح همشون دارن مطابقت با مقتضای حال هم کفش همه دارن اما اون بالاش خیلی برای همین هم از که قرآن اعلا درجه بلاقته درجه بلاقته. چرا چون مخاطبش که انسانه خالق انسان داره اینو میگه از همه بهترین این انسانو میشنسه. کلامش صد درصد مطابق مقتضایی لذا در اعجاز چنین پس کلام صحیح و فسیحی که مطابق با مقتضای حال مخاطب باشه بروس شو البلاغتو فل کلام مطابقتو لما یقتزیه حال المخاطب مع فساحة الفاظه مفردها و مرکبها والا دیگه مبحث رو فهمیدید یه مواردی رو مثال زدم براتون شما متوجه شدید که چگونه است الان مثلا فرض بفرمایید که اصلا الان یک دوتا مثال جوازی هم دزنم کشون ببینید اگر کسی با یه باهوش داره صحبت میکنه بلاغت چه اختیزای میکنه کلام ولی این که الاغل و یک اینجا باید خیلی موجز صحبت کنیم مجزد اتناب باعث میشه که اون فرار کنه اصلا از موضوع مجز اما اگر شما با یک نفری که مسنه یا یک نفری که چرت میزنه دارید صحبت یا بدشهز خو اینجا جا جای جا اتنابه در هر دو جا شما کلامو که آوردی کلماتش کلامش کاملا فسیحند. اما یکی کوتاه یکی بلند. مختزای حال این می میکرده. و موارد متعدد دیگری که شما خودتون میتونید متوجه این موضوع بیشید. الان مثلا شما فرض کنید که قرآن میخونید. میبینید که خدا به موسی میگه ما تلک به یمینک یا موسی. موسی این چیه تو دست تو؟ سوال کرده. موسی چیه این توی دست توست؟ ما تلک به یمینک یا موسی. خوب موسا باید چی جواب میداده؟ مثلا من از شما برسم این چیه تو دست شماست؟ میگید خودکار که چیز دیگه نمی گید که قلمون یعنی هازا قلمان فبر مبتداش هم هست میگم این چیه تو دستت؟ میگی قلم هست خب موسا هم باید می گفت چی؟ ماتل که به یمینه که یا موسا؟ می گفت اصال. همون نگاه که موسی میگه چی یع اسایه‌ اتوچ و علیه و اح شبه ها علاقمی و لیفی ها معارب و اخرا مطابق مختصای حاله بله چه اینقدر شد؟ ایناست که بلاغت رو به ما بیاد میدید اولا اینجا مبتدارم حذف نکرد یه عصایم بعد تازه گفت عصایم خدا نگفته بود که این... که تو دستت مال کیه گونه چیه بعد پشتش گفت و علیها ها این عصای منه بهش تکیه میکنم و احوش رو به ها و باهاش برگ میریزم برای گوسفندام چون چوپان بود ولی فی ها معار بخرا یه سری امورات دیگر زندگی من باش برقرار میکنم کارهای دیگر من باش انجام میدم مثل اینکه اگر گرگی حمله کنه دفعش میکنم اگر جایی بخوام سایبان استفاده کنم ازش با یه پارچه سایبان من موارد دیگه حاجات دیگه من براه بردم چلن قپسی وقتی دیگاه میکنی میبینیم که ها اینجا جای اتناب بوده چرا؟ میگه چون خداوند تالا کیه؟ محبوب موسی؟ معشوق موسی. اینجا خدا از موسی یه چیزی سوال کرده یعنی اجازه داده موسی حرف بزد مقام تخاطب مقام همکلامی رو به او داده لذا اینجا جایی که باید زبان درازی کنه جایی که باید بل, بل زبان میکنه مثل دو نفر آدمی که حالا بلا با هم تازه آشنا شدند و نامزد هستند و غیره یکی که سوال میکنه و یکی شروع میکنه برزن. حالا اگر ازش بپرسه این کفشت چطوره؟ اون بگه سفیده این لباست چطوره؟ مال قبله میگه نمیخواد با من رفت بزنه اما شروع میکنن و با... میبینی چهار ساعت دارن اینا از خود کلام استفاده نمی کنن. از حضور و هم کلامیه با هم یعنی اینجا موسا خاص واقعا توضیح بده ما از مقام تخاطب و از این مقامی که در حضور خداوند داره هم کلام میشه صحبت کنه او به که معشوق سؤال دیگری کنه او دوباره پاسخ دراز بده از این فرصت استفاده کنه. خب اینجا کلام با اتنابش مطابق با مقتضای حال مخاطب اما شما این درازی کلام رو در کلام موسی در کنار دیگران بگید خب پس بنابراین هر کلام صحیح و فسیحی که مطابق مقتضای حال مخاطب یاد گرفت. بعد هم گفتیم این بلاغت کلام یه کف داره که نمره قبولیه مثلا ده که سعی و فسیحه مطابق و مقتضای حال مخاطبه اون مطابقت رو داره اما آیا مطابق تر تر تر میتونه بشه یا نه آیا شرایط بهتر از این میتونه داشته بله این مراتب داره مراتبش مراتبش همون درجات بلاغت میشه اینقدر بالا میره تا به حد اجاز میرسه که کلام الهی است بلاغت متکلم چیست بلاغت کلام رو توضیح دادم فهمیدید بعد برمیگردم نکته‌ای دارم بلاغت متکلم چیست اینم باز تعریف داره هر متکلمی که بتواند با قدرت ملکه هر متکلمی که بتواند با قدرت ملکه کلام بلیغ بگوید متکلم بلیغ است پس اولا بتواند بعد هم کلام بلیغ بگوید بعد هم با قدرت ملکه بگوید نشرایط دیگه قدرت ملکه رو فهمیدید به رو هم توضیح دادم فهمیدید الان منبری خیلی خوب فسیح و بلیغ کاملیه ولی الان چند سالی هستش که ممنون منبر بوده حالا میاد میره بالای منبر میبینه قشن صبح. میشه متکلم بلیغ هر متکلمی که بتواند با قدرت ملکه کلام بلیغ بگوید متکلم بلیغ است تو هم نمیخواد دیگه چون بلدید میدونید من چی گفتم دو سه تا مطلب بگم یک اینایی که ما گفتیم که فساحت کلمه، فساحت کلام، فساحت متکلم، بلاغت کلام، بلاغت متکلم تا اینجا تقسیمات رو بیان کردیم. اینها ساختار به قول خودمون سخنه. اما یه متکلم بلیغ فقط اینکه بتواند کلام بلیغ بگوید دلیل بر این که این نیازمنده به اینه که سخن هم داشته باشه دیگه مایهی برای حرف زدن هم بگید داشته باشه یعنی شما فکر نکنید حالا سعدی مثلا فرض کنید متکلم فسیحیه متکلم بلیغی که صد در صد هست این سعدی اگر مطالعات نداشت اگر تحقیقات نداشت می نه اون خمیر مایه گفتار اینکه بله اون خمیرمایه گفتار این که, بله که چی بگی اونو باید بری از جای دیگه پیدا کنی باید درس بخونی تحقیق کنی بررسی کنی مطالب اون جای دیگره. این به شما غالب سخن رو یاد میده میگه شما میخوای مثلا فرض بفرمایید که نصیحت کنید نصیحت کردن شرایطش مطالبش اینا شو باید بلد باشی اونا رو بلد دودی به این در واقع ابزاره میاد این رو تو قالبش میریزه به متقاطب تحویل میده لذای متکلم بلیغ اگر ناسزا هم بگویه ناسزاش از نظر لفظی بلیغه از نظر لفظی بلیغه اما از نظر محتوا فاسده محتوا یه چیزه ساختار سخن بگید یه چیز دیگه است ممکنه حرف شما خیلی حرف خوبیه حرف شما خیلی حرف خوبیه اما ای حرف شما قالب لفظیش غلطه قالب لفظیش غلطه یعنی اون شرایط فساحت یا بلاقت در کلام رو که گفتیم نداره محتوانو ما اینجا نمره نمیدیم ما اینجا قالب لفظ اینجا داریم در مورد سخن صحبت گفتیم هر متکلمی که بتواند با قدرت ملکه کلام بلیغ بگوید این کلام بلیغ بگوید کلام بلیغ و شرطش رو گفتیم مفرداتش فسیح باشه کلامش فسیح باشه مطابق مقتضای حال مخاطب باشه حالا اون مخاطب چه اختزایی داره محتوای سخن چیه اونا دیگه ما کاری به کارش نداری اینجا بحث بحث لفظ خب پس بنابراین اون موقع ما ممکنه شعر امروال رو هم نمره بدیم نمره احلا درجه بلاقت با اون که از محتوا فاسد یه شعری هم خیلی نصیحت گونه باشه چی باشه نمره ندیم چرا چون از لفظی دارای اشکاله پس اینجا پس بنابر این هر متکلمی که بتواند با قدرت ملکه درست شد کلام بلیغ بگوید متکلم بلیغ است این بحث تا اینجا در رابطه با فساحت کلمه فساحت کلام فساحت متکلم بلاغت کلام و بلاغت متکلم به پایان رسید به پایان رسید اما الان میخواهیم یه نکته دیگری به شما بگم. این رو داشته باشید نگاه کنید ما گفتیم که تو درس بلاغت یه مقدمه میگیم که این مقدمه یه که الان من دارم میگیم بعد گفتیم وارد سه تا فصل میشیم یه فصلش رو بهش میگن فصل بیان باب بیان که گفتیم اینتر ترم میخونیم بیان یک فصلش یک بابش گفتیم بهش میگن باب معانی در بعد انشاءالله در خدمت شما و یه فصل کوتاهی هم داره به اسم فصل بدی یا باب بدیع پس بلاغت کتاب بلاغت چندتا باب داره سه تا علم بیان علم معانی علم بدیع این در واقع به ما چیرو یاد میده بلاغت کلام رو یاد میده ببینید قسم بیانش قسم بیانش اون قسمیه که گفتیم که هر متکلمی که بتواند با قدرت ملکه کلام بلیغ بگه بهش میگیم متکلم بلیغ بعد متکلم بلیغ این بود کلام بلیغو چی گفتیم؟ گفتیم هر کلام صحیح و فسیح که مطابق مقتضای حال باشه اون قسمت صحیح و فسیح بودن و علم بیان به ما یاد میده ما تو علم بیان می میخونیم مجاز میخونیم کنایه میخونیم انواع اقسام اینا یعنی در واقع داریم به شما چی یاد میدیم؟ انواع سخن صحیح و فسیح میگه اگه تشبیح این اشکالاتو داشته باشه غلطه مجاز این اشکالاتو داشته باشه غلطه کنایه این اشکالاتو داشته باشه غلطه مجاز انواه اقسامی داره این اشکالاتو این موارد حس حسنشه یعنی در واقع داریم به شما ابزار کار رو آموزش. پس اون قسمتی که صحیح و فسیح رو به ما یاد میده قسمت بیانه البته کتاب لغت و صرف و نه و اینجور چیزا همه مدخلیت داره این قسمت بیان توش مدخلیت داره بیانه که تغیید لفظی و تغیید معنوی و اینا رو همه رو برمیداره به ما یاد میده پس اون پنجا درصد اول تو علم بیان به میاد و سایر علوم علم لغت نه صرف. شما تعریف کلام بلیغتون رو نگاه کنید گفتیم که هر کلامی که صحیح و فصیح باشد این صحیح و فصیح بودن ها با علم بیان و سایر علوم به دست میاد اون قسمت مطابقه با مقتضای حال مخاطب باشه اون علم معانی به ما یاد میده علم معانی به ما میگه که کدوم کلام رو چه شکلی کن اتناب بده ایجاز بده تا مطابق مقتضای حال مخاطب بشه خب پس اگر این باشه پنجاه درصد بلاغت یعنی کلام بلیغ به علم بیان هست و او رو میمثل صرف و نه و لغت و این ها درصدش هم به علم معانی پس علم بدی چیه؟ علم بدی خارج از بلاغته علم بدی داخل بلاغت نیست خارج از بلاغت یعنی چی؟ علم بدی در واقع اینطوریه که میاد میگه که شما سخنت صحیح و فسیح هست میگیم بله میگه مطابق مقتضای حال مخاطب هست میگیم بله میگه اگر این دوتا هست شما یه لطفی کن این رو این محسنات محسنات یعنی آرایش دهنده ها زیبر کننده ها این محسنات رو حالا لفظی یا معنوی بهش اضافه کن اون محسنات کاری در اصل بلاغت نمیکنه ولی زیباترش میکن این علم بدیه که آرایش کنند لذا اگر کلامی بلیغ نباشه شما با محسنات بدیعی زیباش بکنی یه زرق و برقش بش بدی آه؟ این طرف وقتی فهمید ده برابر منزجر میشه میخواست گول بزن میگه این چشم زیباست میگه بله این خب زیبایی ذاتی داره اون پنجا درصد اول و پنجا درصد دوبان زیبایی ذاتی ایجاد میکنه علم بیان و علم معانی بلاغت تشکیل میشه زیبایی ذاتی این با حسنات لفظی و معنوی که علم بدیه این زیبایی عرضی میگه این چشم زیباست میگه بله خب حالا سرمه هم بکشی زیبا تر اما اگه چشم خودش ناوینا باشه معیوب باشه شما با سرمه کشیدن میگن سیه چون سرخ پوشد، خر بخنده بدتر بشه پس علم بدی به زمانی به درد ما میخوره که بگید بلاغت تشویر شداش اینا محسناته ببینید مثل این می‌مونه. شما میخواید برید مثلا فرض بفرمایید که کادو بدید به یک بچه یا بچه خوهرتون برابرتون جشن تولدش یک کادو بدید خب اختزا داری که چی؟ که یک کادوی مناسب تقییم کنی این کادو تقییم کنی بدون کادو نمیشه بعد هم می آیچ کار میکنی اون رو مطابق مختزای حالش تریم و اگه اون دختر بچه حالا چه, چه سنیه پسر بچه هست چه سنیه تقییم کن خب شما فرض کنی یه توی اون مشماعی که اون آقا داد گرفتی دستتو بردی میبینن میبینن بله اونم دختر بچهای بوده با اون سن میخوره بهش خوب خریدی قبول میشه اما اگر همین کار رو این شکل انجام بیدی همونو میخریدی ولی میدادی مثلا کادو میکرد یه شعر مناسبم در سن اون یه شعر مناسب در همون سطح روش می نوشت یه گلم می زشتی روش می ده. تو اصل موضوع چیزی اضافه کاردور رو پاره می اون گلم میندازن دور همون عروسک می مانه ولی چقدر تاثیرش بیشتر می شود. حالا اگر تو اصل کالا اشکال داشته باشه مثلا فرض و فامیر رو دمپایی پلاستیکی بخرید بذارید کادو کنی خیلی شیعرم روش بینیم خیلی چیز اینها برداری ببرید محله اول میبینن خیلی چیز میشه واز که میکنن ده برابر منزجر میشه تو اصل کار برد پس بنابراین ما در تعریف بلاوت کلام گفتیم چی خوب گوی و گزیده گوی چون در خوب گویش با علم بیان گزیدگویش با علم معانی تأثیر توش دارد درست شد بعد که این دوتا حسن ذاتی رو ایجاد کرد شما با علم بدی میتوانید اونو با آرایه های لفظی آرایه های معنوی چکار کنید؟ بیارایی و الا کلام بلاغتش با علم بیان و علم معانی است این مبحث اول اما از این تعریف فصاحت کلمه و کلام که بریم بیرون میرسیم به به سخن اسلوبهای سخن او به سخن ببینید سه نوع اسلوب و کتب بلاغی به عنوان سبک سخن یاد میکنن سن اسلوب. اصلوب به عنوان اسالی به سخن یاد میکنن یک، اسلوب علمی الاسلوب الالمی دو، الاسلوب الادبی سه، الاسلوب الخطابی الاسلوب خطابی سه اسلوبه تو کتاب بلاغت الواضحت رو میتونی شرح شده حالا ما توضیح میدیم کامل شما نیازونده به اونجا هم نیست اول یه نکته ای رو بگم حالا توی سوال هم ممکن است داشته باشید اینه آیا ما شرط گذاشتیم تو فساحت بلا گفتیم این طور باشه این طور باشه این طور باشه یا این طور نباشه؟ آیا ممکنه دوتا عیب در یه جا جمع شد ممکنه یک کلامی هم متنافر باشه آه؟ کلماتش دارای تنافر باشه تعدید لفظی هم داشت باشه؟ خب این دیگه دوتا عیب داره یه دونه عیب کافیه که اونا از فساحت و بلاغت په اندازه. حالا اگه دوتا شد تا شد, شد، بله جمع ممکنه بشه. هیچ اشکالی نه ببینید ما میخوایم حرف بزنیم میخوایم حرف بزنیم یک کلام بلیغ بگیر قول که کلام فسیح هم داخلشه ما می‌خویم کلام بلیغ بگیم سه تا سبک داریم اگه این صبر کارم اشتباه بکنیم مطابق مقتضای حال نمیشه سه تا سبک یک سبکش که علمیه یعنی چی یعنی شما یک موقع هستش خب داری مقاله می‌نویسی داری نامه می‌نویسی داری یه کلامی بیان میکنی اینجا شما از اسلوبتون اسلوب علمیه یعنی داری فرض بفرمایید یک نفری داره مثلا یک بحث علمی مثلا در مورد زلزله رو توضیح میده یا یک کتاب ریاضیه داره یک جبری مثلثاتی رو داره بیان میکنه خوب اینجا این تو اسلوب علمی چی باید استفاده کنه چیچور چی؟ مثلا کتابی الان هست کتاب ریاضی یا کتابی هستش که مثلا فرض بفرمایید کتاب فیزیک شیمی اصلا تاریخ خب این باید شرایطی که ما گفتیم و داشته باشه شرطش چی بود؟ باید کلام صحیح و فسیح باشه مطابق مختزای حال مخاطب باشه اما اسلوب اسلوب علمیه این کتاب ریاضی باید نوشتهاش کاملا روان باشه اصول علمی شرط اولش اینه که کاملا روان باشه روان نویسی سلیس نویسی شرط اول شرط دوم باید همراه با فکر صحیح منطق درست و استدلال باشه تو اصلوب علمی جای خیال پردازی و جای دوپهلوگویی و اینا نسبت خیلی روشن اصلا خیالات شعری عبارت پردازی های شعری تو جا... توش شعر ممکنه الفاظ جابجا جا بشه این مقدم شما نه نه نه تو اسلوب علمی باید همه چی روان سلیس همه الفاظ سر بشه چرا چون اینجا شما دارید با عقل طرف صحبت میکنید فکر اونو به چالش کشیدید دارید یک مطلب علمی مثل مثلا بحث زلزله بحث جبر و بحث مثلا شکاف اتم دارید اینجور چیزا رو توضیح میدید خودش اینا مشکل داره و قصد اینه که فهمیده بشه دیگه الفاظ اینجا نقشی نداره الفاظ هیچ گونه تأثیری نداره مثلا الفاظ باید لبان لبان لبان درست فرض کنید من کتاب ریاضی مثلا سال سوم د رو میخوام درست. بعدلی کتاب ریاضی اینطور داشت. امروز میخوام برم سر کلاس نوشته که مثلا مثلا حل معادله دو حد. این حل معادله دو بودی. این درس امروز. من و استاد میرم سر کلاس با چیکار بکنم میرم. کیتری مطلب می ریزم و حل معادله یه مسئله می‌نویسم حل می‌کنم دوباره اعداد رو به هم می‌ریزم یه نمونه دیگه حل می‌کنم دوباره یه نمونه دیگه حل می‌کنم توضیح می‌دم چطوره چی چطور این مشهولات رو حل می‌کنم نه هم توضیح می‌دم تقو عداد با مثال های شما هم نگاه کنید مثال ها رو یادداشت میکن یاد. داشت میکنید. یاد میکنید. بعد به یکی تون میگم یه مثالی رو من میزنم بیا پای تخت حل کن. میاد پای تختحل میکن. بعد میگم که خب معادلی دو مشملی درس سوم ماست از صفحه 17 تا صفحه 33 بخونید و تمریننش رو شعر کنید. دیوه نباید من بیام سر کلاس مثل اینکه دارم تاریخ ادبیات میگم یا دارم متونه نظمونست میگم شعرها رو میخونم و معنا میکنم و لغتها رو درست میکنم و فلانه باید. باید اینقدر روان نوشه شما بری بشینید خونه بفهم یاد گرفتی مطلب رو بری خون خودت اینقدر روان باید این میشه کتاب ریاضی خوب برای همین عوضی یه مقاله علمی وقتی مثلا در زمینه مثلا فرض کنید که فیزیک نوشته شده این مقاله باید انقدر روشن و روان باشه اون کسی که توی ژاپن میخونه اون کسی که توی ایران میخونه اون کسی که توی آفریقای جنوبی میخونه هر کدوم یه چیز میخوان. خودشون میفهمن میبرن تو آزمایشگاه بررسی میکنن و نتیجه میگیرن یا نمیگیرن. دیگه اینجور نباشه که این بخواند. یه چیز بفهمه اون بخونه یه چیز بفهم عبارت ها رو بخوان بیشند تفسیر نه هم. هر کی میخونه یه چیز میفهمه میگه دو مولکول اکسیژن یک مولکول ایودروژن وقتی با هم جمع شود پل. این دیگه اینه. دیگه نمیتونه بیاد توش تشمیه متعدد استعاره ها نمی دن ها فلان غیره که هر کسی بیاد برام شکل خودش بخواد تفسیرش بکنه. این اسلوب علمیه درست شو؟ چرا چون با عقل کار داریم پس در اسلوب علمی ما جایی برای خیال بگید دوش نداریم بارزترین مشخصش هم وضوح بیانشه هرچقدر واضح در بلیق هرچقدر روشند در کلمات همه سر جای خودش پس و پیش نمیشن که ایجاد تعقیق مالو یه ذره پس و پیش نمیشه از همه چی نهایت قدرتش در روشنی بیانشه در استدلالاتش روشنی استدلالاتش جمالش زیباییش در روان بودنش سلیس بودنش هر چقدر اینجا متکلم ذوق داره باید این زوغشو در اختیار روان شدن کلمات قرار بده به شکل خدا بشه هر کی خوند یه چیز بفهمه درست شد سلامت ذوق اون در اختیار کلمات روانشه و خوب نوشته شدنش در اینه که روان و سلیس نوشته بشه هر کسی بتونه اون رو الفاظش باید خیلی واضح بشه مثلا دیگه از لفظ مشترک استفاده نکنه که این یه چیز بفهمه اونیسته دیگه فرقه هر کجا مثلا دید یه چیزی حذف شده ممکنه که محظوف رو نفهمن نه اونجا محضوح رو ذکر میکنی. ی چیز حصف بگید مثل چی میمونه مثل این میمونه شما رفتید به یه نمایشگاه یا رفتید به یه موزه تو موزه ها کار میکنن میخوان مثلا فرض و یه شمشیری که مال مثلا قرن فلانه یا یه کار علمی که مثلا مال هنر دست کسیست یا هنر فکر کسیست اینو میخوان به شما نشون به میکنن اینو میارن یه مخمل سبز انداختن اینو گذاشتن روش یه نوری رو روشن کردن روش اینو تو یه جای شیشه قرار میدن توی محفظه شیشی شیشه شیشه انقدر شفا بگیر شیشه رو نبینی اصلا نباید شیشه رو ببینی روشن چرا چون میخوان تو اون رو ببینی اون معنا رو ببینی دیگه نمیان رو مقهر رو محدد کنن که شما شعی رو بالا و پایین ببینی یا اون زیرش رو یه گونه درست بکنن شما خطای دید پیدا کنی سخت بتونی بکنن نه نه شباب کامل شما اصلینه که تو معنای علمی رو متوجه بشی اون ملاک کاره اون ملاک کاره پس دیگه اینجا ما دنبال مجاز نمیریم مجازگوی نداره حقیقت دنبال محسنات بدی هم نمیریم هیچ حالا حالا اگر یه موقع محسنات بدیی یکی دوتاش پیدا شدن تو کلام همینطوری چی؟ مثلا داره میگه که از گردش زمین به دور خودش شب و روز پدید میآید. خب شب و روز صنعت تباق داره. این اشکال نداره. دیگه دنبال صنعت تباق درست کردن ما نبودیم ولی اونجا باید به قول خودمون مگر اونی که همینطوری به قول خودمون به دستمون بیاد. حتی اگر حتی اگر همینطوریش هم یه موقعی تشبیهی مجازی چیزی محسنه بدیهی پیدا شد احساس کردیم یه ذره لبس ممکنه برای بعضی مبهم بشه اونجا اونم حذف میکنیم برمیگردونیم به سریح و رواش پس بهترین کتاب ریاضی بهترین کتاب فیزیک بهترین کتاب شیمی کدومه اونی که شما وقتی فرمول رو یاد گرفتیم اصل علمو به یاد دادن از بیرون گفتن دیگه نیاز به خواندن کتاب نباشد شما به لفظ تو گیری توش نداری اینوش میگن اسلوب علمی پس شما اگر یک زمانی مثلا داری یه ای می نویسی یا یک مقاله می که قصد و قرض تو رساندن یک معنا و است. اونجا وقت کلماتت فسیح باشه، روان باشه، همه چیز سر جای خودش باشه، جای قموز و اشتباه نداشته باشه، طرف و و بیا خونه راحت بفهمه. این اسلوب علمی. الان خیلی از کتاب برای همین هم هست برای همین هم هست که مثلا خیلی از کتاب هایی که ما داریم مثلا توی اسلوب علمی، تو مثلا فیزیک شیمی، اینا اینقدر باید روان نوشته شده شد روان نوشته شده شد که طرف اصلا الفاظ رو نبینه بره رد اونجا جای مجازگویی و استعاره و تشمیح و کنایه و است... دونم فرص کن محسنات بدی و نیست که الفاظ همه جای خودش، هیچی حرف نداره خوب این اسلوب اسلوب علمیه ببینید اصل بلاقت توش هستا کلام صحیح و فسیح مطابق و مختزای حال خب مطابق و حال اینجا حال اختزام میکنه که علمی باشه پس بنابرای الفاظ باید روان ساده همه جای سر جای خودش بدون هیچ گونه قموز اشکال خیلی روشن و واضح از اسلوب علمی که رد بشیم میرسیم به اسلوب ادبی. اسلوب ادبی. اسلوب ادبی. خصوصیاتی داره خصوصیات داره. اولیش زیباییش زیبایی چه منشأ زیبایی هم تو اون فکر و خیالیه که توش به کار رفت و زیبایی تو اسلوب ادبی به خیال و خیال پردازیه که توش تصویرسازی یک که توشه تصویرسازی خیال پردازی اینجاست که تشبیه، و انوا و اقسامش راه پیدا میکنه اینجاست که اشیایی که معنوی هستند ها؟ درست شو؟ معنا هستند تشبیه میشند به امورات حسی و معنوی ها لباس حسی میپوشند گایی اوقات محسوس ها لباس معنوی میپوشند آه؟ اینجاست که استعاره میاد کنایه میاد وچه شبه های حالی یه نمونه مثال بزنم برای مثلا شما شاهنامه بود خوبی ادبی. میگه عدبی میگه زسوم در سطوران دران دشت زمین شش شد و آسمان گشت هشت همه کفیز عرب شیر چی شد میگه میدان جنگی رو توصیف میکنه میگه زسم سطوران از اثر پای این اسب‌ها پا در آن پهن دشت در اون دشت پهن در میدان جنگ از اثری که پای این ها پا در رفت آمد و دویدن روی زمین گذاشتند زمین شش شد زمین هفت دو طبقه داشت الا با پاهاشون تراشیدن یه طبقه رو اینقدر تراشیدن تراشیدن گرد و خاک به پا کردن زمین شش شد و آسمان گشت هشت آسمان هفته طبقه زمین هم طبقه مثل بوسر پیاز اینا یه طبقه رو تراشیدن اینطوری با پاهاشون اینقدر رفتن و اومدن و آسمان فرستادند یک طبقه از زمین رو زمین شد شش طبقه آسمان شد هشت طبقه این دروبه این فکر درست کرده این به قول خودمون خیال درست کرد مبالغه کرده مبالغه این شکلی بیان کرده همه ده اصل زن اما اگر کتاب تاریخ داشت مینوشت نوشت خواه. تو اسلوب علمی باید می گفتش که از دو لشکر در میدان جنگ بسیار تاختند گرد و خاک بسیاری به هوا خواست جوری که آسمان را تیره و تار کرد یه یعنی که آسمان از گرد و خاک تیره و تار شد این طوری. دیگه نمیاد بگه که ز سن ستوران در آن پهن زمین شش شد و آسمان گشتش این مال اسلوبه علمی نیست مال اسلوبه ادبی. تو اسلوب ادبی خیال تصویرسازی، سازی خیال چقدر اینجا تاثیر کرد؟ چقدر تصویرسازی کرد زمین شد هفت تواقی مثل پوست پیاز رو هم اونا آسمان هم هفت طبقه این زمین یه طبقه شو از فا تراشیدن گرد و خواه شد رفت بالا متراکم شد چسبید به زیر طبقات آسمان آسمان شد تا طبقه زمین شد تا طبقه این خیلی تأثیر داره اینجا چه تأثیری داره؟ تشمیه تأثیر داره استعاره تأثیر داره محسنات بدیعی تأثیر داره همه هم البته در حد خودش ها حالا بعدم میگیم اگر از حد خودش بیشتر بشه زشت میشه نه حد معمول خودش حالا توضیح خواهید پس تصویر سازی خیال پردازی آوردن تشبیهات خیلی خیلی بگید تأثیر گذاره و بسیار بسیار اثر داره در اسلوب ادبی تو اسلوب ادبی دیگه ما استدلال نمیکنیم، نمی میگیم آقا غلط این حرفی که اونجا اونجوری بره کار خودشون میکنه پس اسلوب ادبی زیباست قشنگه پر از خیال پردازی و تصویرسازیه البته باید خیال پردازی ها و سازی ها مطابق محتضای حال مخاطب باشه دیگه بیش از حد نباش مثلا محسنات بدی خب شما اگر یه دونه انگشتر دو تا انگشتر مثلا سه تا انگشتر اون دست انگشتان شما باشه یه دونه گردن بند دو تا گردن ممکنه به حدی که نه نیاز هسته کدوم مجلس میره یک نفر از محسنات استفاده ولی اگر یک نفر بیاد مثلا 25 تا انگشتر و انگشوش کنه 15 تا انگو بگردندش و ده تا تا به اون بره میگه کل وشه اینجا و حد او اینقل رو هر چیزی که از حدش بگذره به ضدش تبدیم. اون اندازه مطالب چیزایی که دیگه مطابق مختزی حال اینجا مختضای حال آوردن خیاله مختزای حال آوردن تشویحات مختزای حال آوردن استعاره هاست آوردن بدیه اما چیه مقدار اون دیگه. به این داره که شما جا رو واقعیت رو درست شو. پس خیلی فکر میکنن که اسلوب ادبی باید پر باشه از اینها اینطور نیست الان دو قرآن آیاتی داریم هیچ گونه قول خودمون توش آرایه ادبی نیست ولی در اله درجه بلاقه آیاتی هم داریم پره هر کدوم جای خودش درست شد پس سر اصلوب ادبی ما موندیم بعدم اسلوب خطابی است، تو اسلوب ادبی یک شعر از متنبی هست که من برای شما خواهم خوند که انشالله برای جلسه بعد کتاب رو دارید و من خواهم خوند تو اسلوب خطابی یک کلام از امیر نقل میکنه از نهجور بلاغه اون رو خواهم خوند بعد انشالله جلسه بعد بحث مقدمه تمام میشه و وارد بحث علمه بیان و موضوع تشبیه خواهیم شد که دیگه اصل درسمون شروع میشه حالا یک سری ممکنه جنببندی هایی هم مکاتی هم من بگم که اون مقدمات رو این مقدمات رو توضیح دادم بحث کردم شما هم به طور مختصر داشته باشید برای خاطر اینکه کمکتون بکنه که بتونیم راحتتر وارد علم قول خودمون بلاقت بشیم پس بنابر این ما اسلوب علمی رو گفتیم اسلوب ادبی و بعد اسلوب خطابی و حتما هم جلسه بعد کتاب رو داشته باشید و بحثمون تمام بشه. بعد انشاءالله وارد بشیم میبینید که این درس درس است، درس است، به گونه است که شماها با قول خودمون ازش لذت میبرید. بعد تو زندگی هم میتونید ازش استفاده کنید. یعنی راه گشااست قابل قول خودمون اطمیناد نگران چیزی هم نباشید به خداوند توکل کنید قف ظام رییل الله ان الله ویر بود. همه چیز رو به خدا باید سپوت سعی کنید آرامش خودتون حفظ کنید از شرایط استفاده کنید حالا که در موقعیتی هستید که، وقت بیشتری حداقل دارید از این وقت استفاده کنید مطالعات بیشتری بکنید تو زمینه های خاص خود آمادگی بهتری پیدا کنید که انشاءالله عمرتون به نحوه احسن به شما خیر و برکت برسود همه تونو به خدای صبحان میسپرند انشاءالله که موفق و معیت هستید بیشتر باشید و از هر گونه و بلایی هم بدور نگران هیچی نباشید این درس ای است که شما به بهترین وجهش میتونید استفاده ببرید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته